گرز دست زلف مشکینت خطایی رفت، رفت ورز هندوی شما بر ما جفایی رفت، رفت برک اشکر خرمن پشمین پوشی سوخت، سوخت جور شاه کامران گر بر گدایی رفت، رفت در طریقت رنجش خاطر نباشد می بیار هر کدورت را که بینی چون صفایی رفت رفت عشق بازی را تحمل باید ای دل پای دار. گر ملالی بود بود و گر خطایی رفت رفت گر دلی از غمزه دلدار باری برد برد برمیان جان و جانان ماجرایی رفت رفت از سخن چینان ملالت ها پدید آمد ولی گر میان همنشینان نا رفت رفت ای به حافظ گو مکن وایز که رفت از خانقاه پای آزادی چه بندی به جای رفت ر